اسف بر شما جمله آزادگان بهارم به گردیده مثل خزان منم سوریه متفنه آن بلال اسیرم به چنگال بران اسیرم به چنگال مستقبران بر شما جمله آزادگان بهارم به خزان منم سوری مدنه آن بلال اسیرم بے چنگال مستک برائے اسیرم بے چنگال مستک برائے کجا استلی شیر زمان که باشد کنون ہامیہ مومنان و مر جن کہ تا ذکر اگر یاد و ظالم گہ زدن او بر شما جمله آزادگان وهارم به مثل خزان منم من سووری مد آن بلال. حسیرم به چنگال مستقران حسیرم به چنگال مستقران کشن بیگ و نادفل و بیر رو جوان زهر کوچه ای گشت خون و ربان دمشق, دمشق و حلب روز و شب, و شب در فغان خدا, خدا یا بده قدرتت را نشان, نشان بر شما جمله آزادگان بهارم به گل خزان. منم سوریه مدنے آن بلال اسیرم به چنگال مستک بران اسیرم بے چنگال مستک بران یقین, یقین کاخذ را نباشد باشد اگر چه حکومت کند چن سبا مکن ظلم حمایت ظالم نہ باش کہلند کرد از ظالماں را خدا, خدا، کلان کرده از ظالمان را, را خدا اصف بر شما جمله آزادگان بهارم بگردید مثل خزان منم سوریه مدفن آن بلا اسیرم به چندگال مستقبران اسیررم به چند سال مستران سب مستبط این سخن گوشوگیر توی که نمیودی شهید فللوپید اگر هست تو را در کوخم در زمین زفر اوو فرراونییان فر پ دوگیر است در شما جمله آگان بهاررم به گردیددم مثل خزان منم سوریه مجبنه آن بلال اسیرم به چندگال مستبران اسیرم به چندگال مستبران بدانید کنون تو دیه مشکین بود از مسونی همین آهنین بیا اخطبا باید جهان زه آن راد مرد و اخه و مسلمین صفت شما جمله آزادگان, آزادگان بحارم به گردیده خزان من من سووری مدنله آن بلال اسیرم به چند سال مستک برال به چند مرسی مستک بنازم به آنمرسیه قاهرمان که او کرده حیران همه مشرکان میاییان روافظ و جمعون این به قر او هم چشیری به غر ریده او همچو شیر جیان از, از پر شما جمله آزازگان بهارم به گردیده مثل خزان منم سوریه مدفنه آنبلان اسیرم به مستک بران اسیرم به چندگال مستقبران چوم رسیز من کرد به دفا نمودن دا جانب سرش کودتا بدانید که اسلام همی غالب هست چنین است تو قول رسول خدا اصف قد شما جمله آزادگان بهارم بگردیده مثل خزان منم سوریه بللار اسیررم به چنگال گال مصففران اسیررم به چنگال گال مستشفران بگو احمد از ملک خ صدان ندارب بهاری همین همی هست خزان خداداات تو باش حامییه به شام و به مصر و تمام جهان سب بر شما جمل آزادگان بحارم بگردیده میں منم سوریه مدفن آن بلال اسیرم به چنگال مستقبران اسیرم به چنگال مستقبران حصف بر شما جمله آزادگان بهارم بگردیده مثل خزان منم سوریه مدفن آن بلال اسیرم به چنگال مستقبران آسیرم به چنگال می